ژن خودخواه نوشته ریچارد داتینز فصل 13 هم، بخش 4 هم. اگر موجودی بخواهد محمل کارآمدی برای ژنها شود باید مسیر خروجی ژن هایش برای رفتن به آینده یکسان باشد این در مورد یک قلاده گرگ صادق است این مسیر راه باریکی است که از اسور متخمک می‌گذرد و با تقسیم میوزی ایجاد می شود این قضیه در مورد یک دست گرگ صادق نیست به نفع جنهاست که به بهای زندگی جنهای دیگری که در آن دسته خود خودخواهانه بدنی را که درانند برای رفاه خود ارتقا دهند وقتی زنبورهای یک کندوی اصل دست جمعی حرکت می کنند ظاهرا با دست دسته شدن مثل دسته گرگ ها، خود را تکسیر می کنند اما اگر به دقت توجه کنیم می بینیم آن ژنها حد زیادی سرنوشت مشترک دارند دست کم تا حد زیادی آینده ژن که در آن جمعیت قرار دارند در تخمدان یک ملکه جا گرفته است. به این دلیل پرگنه زنبورها مثل یک محمل منفرد واقعی به نظر می رسد و رفتار می کند. این همان پیام فصل قبل از این است که به صورت دیگر بیان می شود. در واقع همه جا میبینیم زندگی در تک محمل هدفمند جدا جدا بسته بندی شده است. مثلا در یک گرد و در کندوی زنبور اصل. اما آموزهای فنوتیپ گسترش یافته به ما آموخته است که لزومی ندارد چنین باشد. در اصل تنها چیزی که بر اساس نظریه ما میتوانیم انتظار داشته باشیم یک میدان مبارزه است که در آن همتا سازها به سر و کول هم میپرند. بازور خود را جلو می و برای آینده ژنی خود می جنگند. سلاح آنها در این جنگ اثر رخ نمونی است. بیش از هر چیز به صورت تأثیر شیمیایی مستقیم در سلولها اما نهایتاً به صورت اثر بر پرها و چنگالها و حتی تأثیرهای دورتر. بیچون و چرا قضی از این قرار است. که این اثرهای فنوتیپی گرد هم آمده و در محملهای مجذاب بندی شده اند و در هر محمل جنها از مسیر تنگ و مشترک اسپرم یا تخمک به آینده راه پیدا می کنند. اما این واقعیتی نیست که به شودن را حتمی در نظر گرفت امریست که به نوبه خود می شودن را مورد چون و چرا قرار داد چرا جنها در یک محمل بزرگ با یک راه خروجی ژنی مشترک گرده هم آمدند. چرا جنها دسته شدن و ساختن بدنهای بزرگ را برای زندگی خود برگزیدهاند من در کتاب رخنمون گسترش یافته کوشیدم برای این سؤال مشکل پاسخی بیابم. در اینجا فقط بخشی از آن پاسخ را مطرح کردم. گرچه شاید بعد از هفت سال دور از انتظار نباشد که بتوانم آن را کمی پیشتر هم ببرم. من سؤال را به سه بخش تقسیم می کنم. چرا ژنها در سلول جمع شدند ؟ چرا سلول در بدن پرسلوللی ها جمع شدند؟ و چرا بدنها چیزی را اختیار کردند که من چرخه حیات گلوگاهی می نامم؟باتnec life سایکل بنابراین اول ببینیم چرا ژنها در سلول ها تجمع کردند چرا آن هم تا سازهای قدیمی از آزادی شاهانه که در سوپ آغازین داشتند دست کشیدند و در پرگنه های بزرگ پر ازدحام جا گرفتند چرا با هم همکاری می‌کنند با نگاه به طرز همکاری ملخول های DNA امروزی در کارخانه شیمیایی سلول زنده تا حدی پاسخ را در میابیم. ملخول های مولکول‌های پروتین پروتئین می‌سازند پروتئین به عنوان آنزیم بعضی از واکنش های شیمیایی را تسهیل می کنند. اغلب، تنها یک واکنش شیمیایی برای ساختن یک محصول نهایی مفید کافی نیست. در کارخانه های مواد شیمیایی که انسانها تولید یک محصول به بخور احتیاج به خط تولید دارد. ماده شیمیایی اولیه را نمی توان به محصول نهایی مرد نظر تبدیل کرد. یک رشته مراحل میانی با ترتیب خاص باید صورت گیرد. بیشتر ابتکار یک شیمیدان صرف این می شود که مسیر و مراحل میان کار را که بین مواد شیمیای اولیه و محصول مورد نظر است تنظیم کند. و همین ترتیب تک انظیم هایی که درون یک سلولند محمولت نمی توانند به تنهایی از ماده شیمیایی اولیه به ترکیب محصول نهایی مورد نظر برسند. یک رشته آنزیم لازم است. یکی برای کمک به واکنش و تبدیل مواد خام به اولین مرحله از مراحل میانی، یکی دیگر برای تسهیل واکنش جهت تبدیل آن از مرحله میانی اول به مرحله میانی دوم و همینطور تا آخر. هر یک از این انزیم ها توسط یک ژن ساخته می شود اگر در مسیر یک تولید توالی شش آنزیم لازم باشد، تمام شش ژنی را تولید می کنند باید حضور داشته باشند اما این احتمال زیاد است که دو مسیر مختلف برای رسیدن به یک محصول نهایی وجود داشته باشد و هر کدام شش آنزیم خاص خود را احتیاج داشته باشند و لازم نباشد از بین دو آنزیم یکی را انتخاب کرد این نوع اتفاقات در کارخانههای مواد شیمیایی پیش میآید. اینکه کدام مسیر در نظر گرفته شود به اتفاق تاریخی برمیگردد یا ممکن است بر اساس برنامه ریزی هدفمند شیمیدان ها باشد. البته در شیمی طبیعت این انتخاب هرگز هدفمند نیست بلکه توسط انتخاب طبیعی تعیین می شود. اما انتخاب طبیعی چگونه ترتیب کار را میدهد که این دو تداخل پیدا نمی و حاصل کار گروه جنهایی همکاری کننده با هم سازگار است؟ روش آن خیلی شبیه آن است که من از پاروزنهای آلمانی و انگلیسی مطرح کردم در فصل پنجو. مهم این است که یک ژن مربوط به مرحله از مسیر اول در حضور جنهای مرحله دیگر مسیر اول شکوفا خواهد شد نه در حضور جنهای مسیر دوم. اگر در یک جمعیت حاکمیت با جنهای مسیر اول باشد انتخاب جنهای دیگر به سود مسیر اول خواهد بود و جنهای مسیر دوم مجازات می گرچه ظاهرا گیر است. ولی کاملا اشتباه است که تصور کنیم جنهای شش آنزیم مسیر دوم به صورت گروهی انتخاب می شود. هر کدوم از آنها به عنوان یک ژن خود جداگانه انتخاب می شود. اما فقط در حضور مجموعه مناسبی از جنهای دیگر خود را نشان می دهد. امروز این همکاری بین جنها درون سلول ها ادامه دارد. باید شروعش به صورت یک همکاری هاشیهی بین ملکول های همتا در سوپ آغازین یا هر وسیله آغازین دیگر بوده باشد. شاید دیواری سلول به عنوان وسیلهی برای حفظ و کنار هم نگاه داشتن مواد شیمیایی پیدا شد تا مانع از چکه کردن و هدر رفتن آنها شود. عملا بسیاری از واکنشهای شیمیایی درون سلول در بافت قشا ادامه می قشا هم نقش تسب نقالی مرکب و هم نقش جای لوله آزمایش را دارد. اما همکاری بین ها به زیست شیمی سلولی محدود نشد. سلول ها دور هم جمع شدند یا بعد از تقسیم سلولی نتوانستند از هم دور شوند و موجودت پرسلولی را ساختند. حالا میرسیم به دومین سوال از سطهایی که مطرح کردم چرا سلول ها دوره هم جمع شدند؟ چرا این موجودات جنبنده سنگین را ساختند؟ این یک سوال دیگر درباره همکاری آنهاست اما حوزه آنها خارج از دنیای مررکول و در یک مقیاس وسیعی تر است بدن های پرسلول از میکروسکوپ فراتر می روند. آنها تا ممکن است به صورت فیل و نهنگ درآند؟ درشت جسه بودن لزوما چیز مطلوبی نیست بیشتر موجودات باکتری و تعداد خیلی کمی فیل هستند اما وقتی همه راه های امرار معاش برای موجودات ریز بسته شده باشد هنوز میتوان زندگی خوشی را با جنبههای بزرگتر فراهم آورد برای مثال موجودات بزرگتر می میتوانند ریزترها را بخورند و از خورده شدن به دست آنها در امان باشند برای سلول ها، در یک مجموعه بودن فقط به اندازه جسه ختم نمی شود. سلول های گروهی می تخصصی شوند، طوری که هر کدام در انجام کار خاص خود ماهرتر باشند. سلول های تخصصی یافته در خدمت دیگر سلول مجموعه مجموعهشان هستند و خود از مهارت متخصصان دیگر بهره می گیرند. اگر شمار سلول ها زیاد باشد، یک دسته می به عنوان حسگرد، در شناسایی تعمه تخصص پیدا کنند عدی دیگر در نقش عصب پیام ها را منتقل کنند و برخی دیگر در نقش سلول های نیشزن تعمه را از کار می اندازند سلول های چنگال و بازور را به حرکت در میآورند تعمه را می گیرند سلول های ترشوه کننده آن را نرم می کنند و باز گروهی شیره آن را جذب می کنند. ما نباید فراموش کنیم که دستکم کم در بدنهای امروزی مثل بدن ما سلول ها یک تاگ یا کلونی هستند همهشان شامل جنهای یکسان البته در سلول های یافته به های متفاوتی تبدیل می شود های هر نوع سلول مستقیما از نسخه های خودشان در اقلیتی یا سلول های متخصص تولید محسود می برند از سلول های سلسله بزرهای نامیرا. به این ترتیب رسیدیم به سوال سوم چرا بدنها در یک چرخه ی حیات گلوگاهی پا گذاشتند در ابتدا باید دید منظور از گلوگاهی چیست مهم نیست چه تعداد سلول در بدن فیل باشد فیل زندگیش را تنها از یک سلول یک تخمک بارور شده شروع کرده است آن تخمک بارور شده باریکی است که با رشد جنین باز و تبدیل به تریلیون ها سلول می شود که در بدن فیل بالغ است. مهم نیست چند سلول و معلوم نیز چند نوع تخصصی شده دست به دست می دهند تا وظیفه فوق‌العاده فوقلاده پیچیده راه انداختن یک فیل بالغ را به انجام برسانند. همگرایی تلاش همه آن سلول ها باز منجر به ساختن یک سلول می شود. اسپرم یا تخمک. فیل نه تنها شروعش فقط با یک سلول یعنی با یک تخمک بارور شده است پایانش یعنی هدف یا محصول نهاییش نیز تولید تک سلول هاست تخمکهای بارور شده نسته و شروع و پایان چرخه زندگی فیل تنومند و درشت کرد از یک باری که میگذرد این گلوگاهی بودن ویژه چرخه زندگی همه ی حیوانات بورسلولی و بیشتر نباتات است چرا؟ اهمیتان در چیست؟ ما در صورتی می به این سوال پاسخ دهیم که در نظر بیاوریم زندگی بدون آن چگونه خواهد بود. تصور دو گونه فرزی از علفهای دریایی به نامهای تومیخزف و هرزگیاه به ما کمک می کند. هرزگیا به صورت دستی در هم برهم شاخهای بیناز در دریا می گاهگاهی شاخه ای می میشکند در جدا و دور می شود. این شکستگی ممکن است در هر جای آن گیاه باشد و آن تکه ممکن است کوچک یا بزرگ باشد. مثل شاخه های بریده در یک باغ، آنها می توانند دوباره مثل گیاه اصلی رشد کنند. این افتادن تکه ها روش تکثیر این گونه است. همونطور که خواهید دید، در واقع این تکثیر با روش رشد آن فرقی ندارد. جز اینکه در تکسیر تکه های در حال رشد از نظر فیزیکی جدا از همدیگرند هم. و خذه ظاهرش همان است و در همان صورت آشفته رشد می کند ولی یک تفاوت اساسی در بین است. این گیاه، هاگ های سلولی به نام اسپورا در آب می کند که بعدا تبدیل به گیاه جدیدی می شوند. این هاگ ها درست مانند سلول های دیگر آن گیاه گیاهند. مثلا در مورد هرزگیاه، جنس در اینجا نقش ندارد. زادگان یک گیاه شامل سلولهایی است که تاگ یا کلونی سلولهای گیاه اصلی هستند. تنها تفاوت بین این دو گونه این است که هرز گیاه با جدا کردن تکه از خودش که شامل تعداد نامعینی سلول است، خود را تکثیر می کند، ولی در بخشهایی که تونک خزه برای تکثیر از خود جدا می کند، فقط در یک سلول است. با در نظر گرفتن دو گیاه ما توجه خود را به روی تفاوت بین چرخه حیات گلوگاهی و غیر گلوگاهی متمرکز می کنید. با عبور به زور خود از گلوگاه یک سلول تولید مست می کند. هرز گیاه فقط بزرگ می شود و بعد میشکند و دوتا می شود. به سختی می شود گفت که آنها از نزهای جداغانه یا اصلا موجودات ای را شامل میشوند. در مورد تونک خزه چطور است؟ کمی بعد آن را شرح اما حالا یک تصور تقریبی از پاسخ آن داریم. آیا به نظر نمی‌رسد در مقایسه با هرزگیا، تونک به نوعی موجود مستقلتری باشد؟ همونطور که دیدیم هرزگیا با همون روشی که رشد کنند خود را تکثیر می‌کند. در واقع اصلا تولید مثل نمی کند از آن تونک خزه کاملا بین رشد و تولید مثل فرق می گذارد. ما روی این تفاوت تمرکز کردیم. اما منظور چه بود؟ چه اهمیت دارد؟ چرا باید با آن توجه کنیم؟ من مدت زیادی در باره آن اندیشیده ام و گمان می کنم جواب را بدنم. از غذا رسیدم به چنین سوالی بسیار سختتر از یافتن پاسخ آن است. پاسخ را می توان به سه بخش تقسیم کرد. که دوتای اول با رابطه بین تکامل و رشد جنینی سر کار دارد ابتدا پیدا شدن یک ساختار پیچیده از یک ساخته سادهتر را در نظر بیاورید لازم نیست فقط از گیاهان صحبت کنیم و در این مرحله از بحث شاید بهتر باشد به جانوران توجه کنیم زیرا آنها آشکار و اندامهای پیچیدهتری دارند باز لازم نیست به جنس توجه کنیم در اینجا تقابل موجودت دو جنسی و تک جنسی باعث انحراف ذهن می شود. می تصور کنیم حیوانات با رها کردن اسپورهای غیر جنسی تولیده مست می کنند. با تک سلولهایی که از نظر ژنی مانند همان، هم. و البته صرف نظر از جهش ها مانند همه ی دیگر سلولهای آن بدن هستند. اوضفای پیشیده یک جاندار پیشرفته مثل انسان یا خرخاکی به تدریج از تکامل عضوهای ساده اجداد آن پیدا شده هم. اما اینطور نیست که آن عضوهای اجدادی خود را تبدیل به عضوهای فعلی کرده باشند مثل اینکه شمشیر را کوبیده باشند تا تبدیل به بیل شده باشد نه تنها اینطور تبدیل نشدهاند بلکه میخواهم بگویم که در اکثر موارد نمیتوانستند چنین شوند با تبدیل مستقیم شمشیر به بیل ممکن است تغییرات محدودی حاصل شود تغییرات واقعا اساسی را فقط با دوباره رفتن به سراغ تخت رسم و دور انداختن صفحه قبلی و کشیدن یک طرح جدید می توان به دست آورد وقتی مهندسان دوباره به تخته بر برمیگردند و طرح جدیدی تولید می کنن. لزومی ندارد فکری را که در نقشه اول داشتن دور بیاندازند ولی در واقع کسی سعی نمی کند با تغییر در شکل شیء قدیمی چیز جدید را بسازد آن شیء قدیمی با گذشت زمان خیلی ارزش خود را از دست می دهد. شاید دادن بتوانند شمشیر را بکوبد و بیل درست کنند اما موتور هلیکوپتر را میشود با کوبیدن موتور جت کرد نمیشود باید موتور هلیکوپتر را کنار گذاشت و سراغ تخت رسم رفت البته هرگز موجودات زنده را روی تخت رسم طراحی نکردند ولی آنها هر بار دوباره از نو شروع میشوند هر نسل یک بار دیگر آغاز میشوند هر موجود زنده از یک سلول رشد خود را آغاز میکنند آن موجود تصوری از طرح اجداد خود را به صورت برنامه دی این ای به ارث برده است اما اعضای جسم آنها را ندارد این طور نیست که قلب پدر یا مادر در قالبی جدید پیش پیشرفته به شکل یک قلب جدید درآید همه چیز دوباره از ابتدا از یک سلول جدید شروع می شود و یک قلب جدید با استفاده از طرح قلب پدر با تغییرات احتمالی برای بهتر شدن شکل می گیرد. شما متوجهید به چه نتیجه می خواهم برسم؟ در چرخه حیات گلوگاهی یک نکته مهمی است که چیزی معادل امکان دوباره برگشتن به تخت رسم وجود دارد. چرخه حیات گلوگاهی یک پیامد سانویه نیز دارد. گاه شماری ارائه می که می توان از آن برای نظم دادن فرآند های جنین شناختی استفاده کرد. در چرخه حیات گلوگاهی هر نسل نو کم و بیش یک رشته از رویداد های یک پشت سر می گذارند. موجود زنده ابتدا به صورت یک سلول زنده است و تقسیم شدن سلول ها رشد می کند با پخش سلولهایش تکثیر می شود احتمالا در نهایت می میرد و این آن قدرها که برای ما موجودات میرا مهم به نظر می رسد، اهمیت ندارد. از دیدگاه این بحث، پایان چرخی زندگی وقتی است که موجود فعلی تولید مرس کرده و نسل جدیدی شروع شده باشد. از جنبه نظری، موجود زنده در هر زمانی طی دوران رشد خود می‌تواند تولید مرس کند. ولی ما این انتظار را داریم که زمانی مطلوب برای تکثیر وجود داشته باشد. موجوداتی که وقتی خیلی کم سن یا خیلی پیران تولید مثل می‌کنند در نهایت زادگان کمتری خواهند داشت از آن رقیبانی که نیروی خود را جمع و سپس مقدار زیادی یاخته زایشی در اوج جوانی رها می‌کنند بس به سمت این فکر قالبی پیش می‌رود که چرخه زندگی به طور منظم تکرار می‌شود زندگی هر نسل نه فقط از گلوگاه یک تک یاخته شروع می‌شود بلکه دوره رشد دوران کودکی آن مدت مشخص دارد این مدت مشخص در یک چارچوب معین دوره رشد فرصت را برای اینکه چیزهای خاصی در زمانهای خاصی در طول رشد جنین رخ دهند را فراهم می‌آورد آورد. که گویی بر اساس زمانبندی خاصی عمل می‌شود در موجودات مختلف به درجات متفاوت تقسیم سلولها در هر رشد توالی ثابت و خاصی را رعایت می‌کنند توالی خاصی که در هر تکرار از شرخهی حیات دوباره صورت می گیرد. هر یاخته در برنامه تقسیم سلولی جایگاه و زمان و حضور خاص خود را دارد. از غذا در برخی موارد این به قدری دقیق است که جنیشناسان می به هر سلول نامی بدهند و یک سلول خاص در یک موجود زنده را نظیر سلول دیگر در موجود زنده دیگر بدانند. برابر شکل کلیشهی چرخی رشد یک ساعت یا یک تقلیم است که با آن میتوان رویدادهای جنیشناختی را اندازه گرفت. در نظر بیاورید ما چگونه از گردش روزانه و از چرخش سالانه زمین به دور خورشید برای شکل دادن و تنظیم زندگیمان استفاده استفاده میکنیم. به همین ترتیب، آهنگ تکرار شوندهی رشد، که چرخه حیات گلوگاهی تدارک دیده و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد برای نظم و شکل دادن به جنین به کار می‌رود در زمان‌های خاص ژن‌های خاص فعال می‌شوند یا از فعالیت دست میکشند. زیرا گاه شمار گلوگاهی چرخه رشد به آنها چنین برنامه‌ای را اعلام کرده است چنین برنامهریزیهای هماهنگ برای فعالیت جنها پیش نیاز هر تکامل جنینی جهت تولید باوتا و اعضای پیچیده است زرافت و پیچیدگی چشم اقاب یا بال پرستو را بدون داشتن برنامه دقیق زمانی برای صورت گرفتن مراحل مختلف نمیتوان انتظار داشت سومین پیامد چرخه ی حیات گلوگاهی به ژن مربوط می‌شود. در اینجا باز از تنگخزه و هرزگیاه استفاده میکنیم باز هم برای ساده کردن کار با فرض اینکه این دو گیاه تولید مثل غیر جنسی دارند درباره تکامل آنها میاندیشیم تکامل به تغییرات ژنی یعنی جهش نیاز دارد در هر تقسیم ژنی ممکن است جهش صورت گیرد در هرزگیاه دودمان جلوخانی جلوخانیاند در مقابل گروگاهی در هر شاخهی که میشکند و جدا می شود، تعداد زیادی سلول هست بنابراین کاملا محتمل است که دو سلولی که در یک شاخه جدیدند نسبت به هم خویشاوندان دورتری باشند تا نسبت به سلولهایی که در شاخه اصلی قرار دارند منظورم از خویشاوندی ها و غیره است سلولها سلسله مشخصی دارند که شاخه شاخه میشوند بنابراین واجهی مثل نسل دوم اموزادگان نوه را میتوان بهتون ازخواهی برای سلولهای های بدن به کار برد. در اینجا تنگخزه کاملا با هرزگیاه فرق دارد. در تنگخزه همه سلولهای های یک گیاه جدید زادگان یک تکیاخته زایشی بنابراین همه سلول های یک گیاه خاص نسبت به اموزادگان یا هر خشابند دیگر نزدیکترن تا به هر سلولی در یک گیاه دیگر تفاوت بین این دو گونه گیاه از نظر ژنی پیامدهای مهمی دارد سرنوشت یک ژن تازه جهشیافته، یافته را ابتدا در هرزگیاه و سپس در خزه در نظر میآوریم در هر شاخه هرزگیاه ممکن است جهشی در یک سلول رخ دهد زیرا گیاه جدید از طریق جلوخان پیدا شده زادگان آن سلول جهشیافته یافته توانند خود را در گیاه جدید و کنار گیاه اصلی با سلول های جهش نکرده که اقوام نسبتا دوری ببینند. برعکس در تونگ ما نزدیکترین جد مشترک همه سلول که در یک گیاه هم از آن یاخته زایشی اسپوری که باعث پیدایش گیاه از طریق گلوگاهی شده که هنسالتر نیست. اگر آن یاخته شامل ژن جهش یافته باشد همه سلول های گیاه جدید دارای آن ژن جهش یافته می شوند. اگر آن یاخته چنین نباشد، آنها چنین نمی شوند. سلول های درون تنگخزه از نظر ژنی هم شکلند تا سلول های هرزگیاه که کم و بیش در یک جهش برگشتی با هم تفاوت دارند. در تونخزه هر گیاه تک است. با هویت ژنی منحصر به خود که شایسته این است که آن را یک فرد بنامیم. گیاهان هرزگیاه از نظر ژنی هویت کمتری دارند و نسبت به همتاهایشان در خزه کمتر به عنوان یک فرد شناخته می میشوند این فقط بازی با کلمات نیست علیرغم جهش همه سلولهای درون هرزگیاه منافع ژنی یکسانی دارند در سلول هرزگی ها هر ژن در پی این است که با بیشتر کردن سلول خود به منافعی دست یابد لزوما در پی این نیست که با تکثیر کل آن گیاه به منافعی برسد جهش این احتمال را که سلولهای درون یک گیاه از نظر ژنی مانند هم باشند کم می کند. بنابراین اینطور نیست که آنها همه با هم برای ساختن اعضا و گیاه جدید همکاری کنند انتخاب طبیعی بیشتر از میان سلولها صورت می گیرد تا از میان گیاهها از آن طرف در تنگخزه احتمالا همه سلول از نظر ژنی یکسانند، برای اینکه فقط با جهش های اخیر تقسیم شده بنابراین آنها با کمال میل در ساختن ماشین بقای کارآمد دست به دست هم میدهند. احتمال اینکه سلول های متفاوت ژن متفاوت داشته باشند بیشتر است. به این دلیل که سلول را که از گلوگاه متفاوت گذشته اند با چیزی جز, جز جهش های اخیرشان، تشخیص داد و این یعنی اغلب آنها بنابراین انتخاب از میان هرزگیاهان رقیب صورت میگیرد نه از میان سلول های درون آنها به این ترتیب ما انتظار داریم شاهد تکامل عضوها و تمهیداتی باشیم که در خدمت کل گیاه هستند به هر حال مخصوصا برای آنها که به طور ای به این موضوع توجه نشان میدهند در اینجا قیاسی با بحث انتخاب گروه در کار است ما میتوانیم یک موجود زنده را یک گروه سلول در نظر بگیریم. صورتی از انتخاب گروه میتواند تواند کارآمد باشد. اما به این شرط که ابزاری برای افزایش نسبت تنوع بین گروهی به تنوع درون گروهی پیدا کنیم. روش تکثیر تونخزه دقیقاً افزایش این نسبت است. وضعیت هرزگیه درست برعکس است. البته شباهت بین روش گلوگاهی و دو نظر دیگری که در این فصل مطرح شد وجود دارد که ممکن است روشنگر باشد اما من وارد آنها نمی شوند. یکی از آن دو نظر این بود که انگل با میزبان همکاری می تا جایی که جنهایشان در یک سلول مشترک با گذشتن از یک گلوگاه مشترک به نسل بعد منتقل می شوند. و نظر دیگر اینکه که سلول های بدنی که به صورت جنسی تکثیر می شوند. فقط به این خاطر که تقسیم میوزی در آنها کاملاً بیترفانه است با هم همکاری می کنند. در مجموع ما سه دلیل داشتیم بر اینکه چرا چرخه زندگی گلوگاهی باعث پیدایش موجود زندگی به صورت یک ماشین بقای مشخص و یک پارچه می شود. این را می توان به ترتیب برگشت به تخت رسم چرخه زمانی منظم و همشکلی سلولی نام گذاشت. اول کدام اینها پیدا شدند؟ چرخه زندگی گلوگاهی یا موجود زنده واحد تمایل من به این است که فکر کنم هر دو با هم پیدا شدن در واقع شک دارم مشخصه معرفی یک موجود زنده واحدی باشد که با یک سلول گلوگاهی آغاز و پایان میپذیرد اگر چرخه حیات گلوگاهی شود به نظر میرسد چیزهای زنده محکوم به این خواهند بود که درون بستایی مجزا و منحصر به خود موجودات زنده باشند و هرچه آن چیزهای زنده در ماشین بقاهای جدا جدایی بسته بندی شوند سلول های آن ماشین بقا بیشتر تلاش خود را متمرکز می کنند بر طبقه خاصی از سلولهایی که قرار است جنهای مشترکشان را از طریق گلوگاه به نسل بعد برسانند این دو پدیده چرخه گلوگاهی و موجودات مجزا پا به پای هم پیش می روند با تکامل یکی آن دیگری تقویت می شود به صورت متقابل یک دیگر را تقویت می کنم. مانند گردش و انتقال احساسات یک زوج در جریان یک معاشقه. روخنمون گستر شافی کتاب طولانی است و نمی شود آن را در این فصل فشورده کرد. من مجبور شدم اینجا از یک سبک فشورده نسبتا شهودی و حتی حسی کمک بگیرم. آمیدوارم موفق شده باشم اصل مطلب را بیان کنم. اجازه بدهید با یک بیانیه کوتاه بیان خلاصه ای از حیات از دیدگاه ژن خودخواه رخنمون گسترش یافته کار را به پایان برساند از این منظر این مطلب در مورد هر موجود زنده در هر جای جهان صادق است واهد بنیادی یعنی محرک اصلی کل حیات همتاساز است یک همتاساز چیزی است در جهان که هایی از آن ساخته شود با تصادفی کنار هم آمدن ذرات ریزتر همتاسازها ابتدا به صورت اتفاقی در جهان پیدا شدند. بعد از اینکه همتاساز پیدا شد توانست مجموعه های بینهایت بزرگی از نسخه های خودش را تولید کند اما چون هیچ فرآیند نسخه برداری بینقص نیست. جمعیت آن همتاسازها شامل تنوعاتی است که با هم فرق دارند. بعضی از آن انواع متفاوت توان تکثیر خود را از دست می دهند و با از بین رفتنشان نوعشان هم از بین می دهند. دیگر همچنان همتاسازی می کنند ولی با کارایی کمتر و باز انواع دیگر هستند که خود را در این کار تر می بیدن. آنها نسبت به نزدهای قبل و هم, هم اصران خود همتاسازهای بهتریم هم و زادگان اینانند که جمعیت فراگیر میشوند با گذشت زمان جهان پر از همتاسازهای پرقدرت و خلاق می شود به تدریج راههای بیشتر و دقیقتری برای اینکه همتاساز خوبی باشند کشف می شود همتاسازها به زندگی ادامه می دهند این نه تنها به خاطر ویژگیهای ذاتی خود آنها بلکه به خاطر اثری است که بر جهان میگذارند این از ممکن است به صورت غیر مستقیم باشد. تنها چیز لازم این است که سرانجام آن تأثیرها، هر قدر هم راه دور و دراز و پر پیچ و خم و غیر مستقیمی را پشت سرگزارند به خود همتاساز برگردند و بر موفقیت او در همتاسازی تأثیر گذارند. موفقیت یک همتاساز در جهان بستگی به این دارد که آن جهان چگونه جهانی باشد. یعنی به شرایط از قبل موجود بستگی دارد از میان مهمترین شرایط موجود یکی همتاسازهای دیگر و تأثیر آنهاست مانند آن پاروزنهای انگلیسی و آلمانی همتاسازانی که متقابلا منافع یکدیگر را تأمین کنند هر کدام در جایی که دیگری حضور داشته باشد فراگیر خواهد شد در زمانی طی تکامل حیات در کره ما دار و ای از این همتاسازهای متقابلا سازگار شروع کردند به متشکل شدن از محمل های جدا جدا یعنی سلول و بعد بدنهای های پرسلول محمل که با تمید از شرخه زندگی گلوگاهی تکامل یافتند پیشرفت کردند و مستقلتر و متردکتر شدند این بندی چیزهای زنده در محمل جداگانه آنچنان مشخصی قالب و فراگیری شد که وقتی زیزچناسان وارد صحنه شدم و چگونگی شروع حیات را مورد سوال قرار دادم بیشتر سوالشان درباره محملها موجودات زنده جدا جدا از هم بود ابتدا موجود زنده ای منفردن وارد آگاهی زیزچناس شد و او آن همتاسازها را که حالا نامشان را ژن گذاشته ایم بخشی از ماشینالات در نظر آورد که موجود زنده به کار گرفته است تلاش ذهنی زیادی لازم است تا زیستشناسی دوباره به مسیر درست بیفتد و به خودمان بگوییم هم از نظر اهمیت هم از نظر تاریخشه هم تا سازها مقدمند. یک راه برای دادن این تذکر به خودمان این است که در نظر آوریم حتی امروز اینطور نیست که اثر رخ ژن جن به آن تک بدنی که در آن نشسته محدود باشد یقیناً چه در اصول و چه در واقعیت دامنی تأثیرات جن از قالب هر تک بدن فراتر رود و چیزهای جهان اطراف آن را تحت تأثیر قرار می دهد بخشی از جهان بیرون، جهان بیجان و بخشی از آن دنیای زنده است که با آن فاصله زیادی دارد. با کمی قوی تجسم می توانیم جنها را در مرکز شبکه‌ای پرتشعشع نیروی رخنمون گسترش یافته ببینیم و هر ای در جهان مرکز همگرایی تأثیرات شبکیه ژنهای بسیاری است که در موجودات زنده گوناگونی قرار دارند. دامنه گسترده تأثیرات ژن حد و مرز ندارد. سراسر دنیا پر از خطوط متقاطع و درهم برهمی است که یک سرشان به جنها و سر دیگرشان به اثرهای رخنمونی دور و نزدیک آنها وصل است. یک واقعیت دیگر، مهمتر از آن که بتوان اتفاقیش دانست. ولی هنوز در نظریه نمی توان آن را اجتناب ناپذیر نامید این است که این خدود دست دسته شدن این طوریست که همتا سازها آزادانه در دریا پخش باشند. آنها درون بسته های بزرگی کنار هم قرار دارند. درون بدن موجودات زنده و پیامدهای های رخ نمونی به جای اینکه به صورت یک نواخت در سراسر جهان پخش باشند در بسیاری موارد درون بدنها به هم چسبیدهاند اما بدنهای جدا جدا که برای ما بر روی این کار چیزو بسیار آشنایی است ممکن بود وجود نداشته باشد تنها چیزی که وجودش برای احراض حیات در هر کجای جهان ضروری است همان همتاسازهای همیشه زنده است